مدهم و با حضرت معصومه سلام الله علیه قم از وجود حضرت معصومه با سفاست قم اشعال رهبر اسلام مستفاست معصومه برکت است بر اهل شهر قم. او هم کریمه است او هم مجتبا او خواهر امام هست و دختر امام او هدیه ای سوی خداوند کبریاست هر کس زیارتش برود میرود رود به هر کس که زائرش بشود زائر رزاست هر کس در این هریم گرم نیایش است، در حریم اوست که شور و نواب پاست در بیت نور اوست که زوار ناامید با دست لطف اوست که حاجاتشان رواست دل چون کبوتریست اندر حریم او هر قلب عاشقانه به این عشق مبتلاست دستم بگیر حضرت معصوم روز هشر. دستم بگیر دست تو بانو گره گشاست. هر دم جواد مده تو گوید ز عمق دل، ای آن که نامتان به همه دردها دواست. در مدح و مصیبت حضرت معصوم سلام الله علیها معصوم ای کریم و ای معدن سخا جان امام کازمی و خواهر رضا موسی چه گفت آه که جانم فدای تو چون فاطمه که گفت به او بزعه مصطفی با مولدت تمام جهان گشته پرز نور بیت پدر ز مقدم تو گشته با صفا دلتنگ تا برادر خود کرده ای سفر تا آمدی به قم شده ای میهمان ما این قمز میز بانیتان گشته مفتخر بوی زتوس میوزد از مرقد شما وقتی که در فراغ رضایت شدی مریض هر دم صدا زدی ببرم یاورم بیا گفتی که خستم که بس من ندیدم در آخرین دقایق عمرم زنم صدا این راه را به خاطر عشق تو آمدم میخواهم از خدا همه دم دیدن تو را تا آمدی به قم همه شهر آمدند با شادی و به دست گلو روی لب دعا اما بسوزدین دل ما آن دمی که شد وارد به شام زینب و رأس بنیزه ها ای وای من ز هلهله و شادی عدو ای وای جسارت آن قوم بی حیات ای وای من ز بزم شراب و ز تشت زر گریان منم به غربت آن شاه سر جدا ای دختر امام و ای خواهر امام ای یاد و نامتان شده بر درد ما دوان